چون شاهد رو خانه پرداز شود، هجنس به اصل خیشتن باز شود، این ساز وجود چار عبریشم تب از زخم روزگار بیساز شود. آنها که به فکر معنی سفتند، در ذات خداوند سخنها گفتند، واقفتونه گشتند، بر اسرار فلک، اول زنخی زدند و آخر خفتند. این خلق همه خران با افسوسند، پرمش علب و میان توهی چون کوسند، خواهی که کف پای تو را میبوسند، خوشنام به زی که بنده ناموسند روزی که جزای هر صفت خواهد بود، قدر تو به قدر معرفت خواهد بود، در حسن صفت کوش که در روز جزا، هشت تو به صورت صفت خواهد بود.